دلسی توسعه چهار و حضور فرماندار 13 شهری بعد از سفر آقومان بکرمه در و که از حوضهای مختلف وزیر ساختای چهابهار داشته تقویت بنادر و بنادر چهابهار و یک ظرفیت و امکانت دلاغهی که در چابهار ایجاد شده در سیاست سیاستگذاره های دولت و ترکیدات مقام معظم رهبریه و از موجز به دولت برای اینکه این منطقه نسبت به سایر بنادر جنوبی ضعیف هست و یک توازون بین بنادر ایجاد نشده جهت فایل شده می قرار شو جلسه شورای هماهنگی توسعه چابهار برگزار بشه طالب از جلسه امروز این است که کلیه درگاه‌ها و امکانات و ظرفیت‌ها یکی درودهای مختلف بحث بندری گومرکی انبارها و حمل و نقل راهند کلی درگاهی به نوع داخل هستند رو از هم وارداتان هم صادرات و کالا در خواستاشون اعثار بشه و به یک جنبندی برسیم بتونیم از طریق تهران انشالله در جلسات یک در حیرت دولت و شورای عالی اقتصاد صورت میگیره انشاءالله پیگیری بشه و به برسیم اینه که تو خدمت عزیزان هستیم بتونیم از زریاد و پیشنهاداتشونه استفاده بکنیم و بتونیم به یک جنبندی جامعه و کامله برسیم برکت صلواتی بر محمد و آل محمد لحمد <Hebrews 8> آیا آزدکیرم، گزارشی از وضعیت و توپارات و مسائل تجارتون بدید من؟ میکروفونت هم روشن کنی زمان، صدا بیاد. موضوعاتی که تو منطقه آزاد شعبهاد از بیس دو دو, دو یک نوید هفت دارست از از اون مسببه ای دولت حفظه اینکه الزام شد کالاهایی هایی که وارد منطقه میشه با سب سفارش باشه که نخوام ورود کنیم بس این مقایره با ماده 14 قانون امور مناطق هست که کاله های وارد به منطقه را مستثمه کرده از الزام به سب سفارش ولی این ای اجرایی شد از همون اولی که دولت الزام کرد ما این اجرایی کردیم. که متاسفانه این روان با توجبه این اینکه یه مشکلاتی که تو تیزم سامان سب سفارش موجود داشت بحث واردات وارداتی که دوچاره مشکل شد الان حدود 85 درصد یعنی کاهش واردات یعنی ما داریم نسبت به ساله هایی که این الزام وجود نداشت مثلا من تو سال 98 اگر در نظر بگیم تو این چهار ماه، آمار چهار ماه نسبت به سال 97 یا 96 85 درصد کاهش داره وارداتی که به منطقه آزاد شده که دلیل اصلیش هم همین بحث سب کالا سفارش که به صورت کشدار و مریضی مقتایی سامانه سفارش باز هستی یا سری کالا سبسفارش میشه اون بحث کالای همراه مسافر بود کالای به سب گروه ها یک، گروه یک، دو، سه بود که این مشکلات برای منطقه ایجاد کرد که الان این موضوع باعث شده که بخش عمده از غرفدارا یا مثلا توجهاری که اینجا داشتن کار میکردن یا مجبور میشن که به قول من فقط همزینه ثابت رو بدن که کالای وارد نکنند چون نہیں کالا وارد بکنن علاوه بر اینکه این مشکلات مثلا ارزی هم وجود داره ولی مشکل اصلی اینه که سب سفارش نمیشه کالا که وارد منطقه بشه ما الان اصلا الان چیز حدود فکر کنم 16 تا لینج توی اسکله چابہار وجود داره که به دلیل سب آدم به قول معروف کی نتونن سب سفارش بگیرن سمانه باز نبوده کالاشون مونده مثلا الان کالای وجود داره نزدیک به یک دو, ل... دو تا لینک هست کاله مواد غذایی تاریخ از 15 یک نوود هشت وارد شده در حالی که کاله های گروه چار برای از اون مغلتی که داده بودن به سب ف... اسفند نوود و هفت و فروردین نوود و هشت میتونستن سفارش سبسفارش کنه برای از اون سد و چهل که دولت اعلام کرده بود نه تو مخته نتونستن کاله رو ترخیص بکنن، الان مشکل افتادن، زیروزم من با های مظلومی صحبت کردم، های مظلومی چندین نامه تا الان زده پیگیرهای مکراری از طرف های مظلومی، از طرف سازمان انجام شده ولی هنوز به نتیجه نرسیدیم که بخوام به ما اجازه بدن این رو ما تخلیه بکنیم الان مثلا کالا مواد غذایی شیشفت ما از تاریخش گذشته الان فکر کنم یک ماه دو ماه بیشتر نمونده برد، ای یک موضوع موضوع دوم هم, هم الان هایی که الان قوارض كننده ها رو مراجعه میکنن توجیه مراجع میکنن ولی اینکه مثلا قوانین بیشترشون مثلا بحث تسهیلات و قوانینی که منطقه آزاد داره بیشتر مراجعاتی بغلمال توجیه به چاوا بهار هست بیشتر اینا مثلا اولین رودیشون که یعنی انجه اولین مراجعه به منطقه آزاد چاوا ولی الان با توجه به این بحثی ای که معنای رحم دوتا اسکله کلی الهار نیست الهارگیج مثلا تصریح قانونی وجود نداره ما نمیتونیم به ایشون مثلا قطعا بگیم که شما این کارو بکنید الا مثلا با ما رویی صحبت میکنیم میگه شما میتونید می می می تو منطقه آزاد چابهار سرمایه‌گذاری بکنید طرف میاد اینجا زمین میخره کاراش انجام میده ولی فردا میخواد از تسهیلات منطقه آزاد استفاده بکنه چون که اسکله شهرداری اسکله شهرداری تنان تو محدوده منطقه آزاد وجود نداره عملا نمیتونه کاری انجام بده نه تو ورود کالا اشنا تو صادراتش یعنی این یکی از مشکلات دیگه هم همینه توی به سبب الحاق و تسریع قوانین به هست که منطقه آزاد چابه ها رو تو بحث واردات و دو چاره چالش جدی کرده یعنی که اگر تصمیم گیری نشه من یعنی ما شما قول میدم آیدو تکردی با من بنده به عنوان مدیر گمرک که منطقه آزاد چابه ها اگر تصمیم گیری در خصوص بسطنی تکلیف سبسفارش مناطق یا بحث تصدیق قوانین بشه باید انجام نشه برای این دوتا مورد یعنی من میگم سفر میشیم ورودی من علاوه بر اون طبعات اجتماعی که فردا گریبان گیرمون میشه بحث ریالی و درامتی و دلاریمون هم گوچه ابت مشکل میشیم خیلی سالی موسیقی من تبدیم از شما هستم پشمان از شما درخش پشمان, پشمان دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. حسن پور هستم از پشمان موردان با تراجع به تصویب دولت مبدی بر اقتصاص پنجاز درصد بارا به شابه هاگ آقای برنداصیری مدیر آمل خوششمانه مورده هم کشپر باتوجه به ابلاغه که آقای مدرس داشتن برای بحث ارسال کشتی ها به چابه ها به زیر مجموعه دستور دادن. طرح شده که در مناقصات بنابولندی جدید مقصد چابه ها رو لحاظ کنن و بارهای قبلی که هم شده با فروشنده داره مذاکرات انجام میشه که انشاءالله شاید. بکنن که این کشتی ها رو هم به مقصد چابه ها فقط بحث مهمی که مشکلی که پشتیوانی عمردام داره برای بحث انبار. انبار اداره بندر بیشتر مختص گندمیه که ارسال میشه یا تدریغات. برای شورای تدابیر اندیشیده میشه که پشتیبانی عمردام هم از انبارهای هم انبارهای اداره بندر هم انبارهای تدریغات بتونه استفاده کنه. چی ان مواد پشتیبانی پنجلا و زورت ذرت جای بیشتر باعث ادامه دام مشکل دیگه که فقط مشکل انبار مشکل انبار خیلی متشکرم. آیگه هم دیگه دی. بس بسم الله الرحمن الرحیم سلام و خدا و دارم خیلی مزاید همه قضای جلسه و همچنین ناهای پردان باشدید که زحمت کشیده من را تشکت خب این موارد و مسئولی که امروز داره بحث میشه کلا همه اینها احساس شده، مشخص شده داره کار میشه و در حال اجرام هستیم حالا خود من حقیقتم خیلی بازم هنوز بابید موضوعاتی که داخل خدمت ستاف شبونت و شیمی که قبل همین الان احساب شده بررسی شده، روش کار شده، مشکار شده، در این طبیعی میمونه نشده که شاید تو وقت چه چیزی میخوان از این واسطه‌ای که ما می‌رد می‌خواد داشته باشه. خوب هم با روی خود شما از طرفی هم داریم فرموندا در جریان کامل قرار دارن که خوش داریم کار رو کار کردیم خب معاون اداری هم تو این بخش وجود اومده در حال رفعه این موانع هستیم تهاران هم خیلی خوب پای کار آمده و حقیقتا تا این لحظه هم حمایت‌های مادی و معنیگی رو داشتن اما ما داخل وستان شاید نتونستیم کنیم بفاقه و نگاه ملی و همه لازم برسیم که بتونیم ها رو اجرایی بکنیم ما هم تمام توان گذاشتیم که به بخش کشتی ها بخشی از کلمه اساسیه ما سریق بندر چابهار بیایی. ضوابط اینه که ما توی زیرساخت ما اداره متصدی که همه دوستان دارم ما واقعا ضعیفیم هم توی حوزه حمل و نقل هم توی نگهداری خود کارامون واقعا ضعیف. این ورودی کامیون به حوزه چابهار واقعا کمه و یکی از دلالی هم که ما واقعا توی حوزه فرسانه ما ارسال کارو به سایر مناطق با مشکل جدی مواجه هستیم واسه خود حمل و نقل این نتونستیم کارها رو برای اساس اون شرایطی که مدن نظر ما هست بکنیم از حوزه خارج کنیم خب این خودش مزید بر علت میشه این حالا این پایز بیان به این سمت رو ما چه سیاست هایی رو دنبال بکنیم یا چه تسکیرات رو ببینیم برای بخش حوضی همینق تا بتونن راندگان، کامیندوران بتونن ورود بدار بکنن به حوضه منطقه و هم برنامه کردیم تقریبا برای برج هفت اگه خدا بخواد این کشتی شکر بود 60 هزار وارد منطقه کرد یه بلیط 16 هزار وارد بتل کرد. چون لحظه هم تقریبا بود 60 هزار کردن وارد کردیم کاظم همین به سرای موجود خود رو داریم استفاده آن روند اجرای کار تو هم واقعا ضعیف و کم بود و الان دو تا وارد مدار کردیم هم اون میزانی که مد نظر ما هست هم نمیشه. اداره قلا هم به طور کامل 100 درصد هم تو بحث تأمین کالاهای اساسی اعلام 100 درصد آمادگی داشته در انجام میده برای بحث ورود کالا و کشتی به حوزه و تمام توانم گذاشتیم که اون بخش هایی که مرتبط با این موضوع و موضوع ما هست اینها رو ان شاءالله خدا بخواد شاید تا یک و دو ماه آینده بتونیم در مدار قرار بدیم خب حالا اتفاقات خیلی خوب یا که اجازه بدین جلسه این خدمت درموضوع بکنم که چه گام هایی رو برداشتیم و موانه هم داشتیم موانه هم تقریبا تا حدود زیادی برطرف کردیم انشالله که این قول رو بتونیم که در آینده یه نه چندان بتونیم حدا حداقل از در دوش شرکت انبال های طریق و موسیم شروع بتونیم استفاده کنیم و ما رو زیر بار کالا ببریم چه میکنم اگر موضوع خاصی هست به با این برش ما هم خدمات شما هستیم و میشونیم شما آقای مژد. بله تا بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلام، وقت بخیر دارم. ایام شهادت و سوگوار رو تسلیت عرض میکنه. ان شاء الله برای من یه پیشنهاد اصلا در واقع چون عنوان جلسه‌مون شورای تصریعی چابهار هست و که حد ده اکثریت فرصت و استفاده را از جلسات بگیریم خواهش می‌کنم دوستان چه بخش خصوصی چه بخش دولتی تو این جلسات اگر موارد رو به شکل واضح و در هیئت مشخص عنوانش و طرف صحبتشون چه ساز من یا چه مجموعی هست رو مطرح میکن مثلا از من گمور بدانم و ما از گمرگ این روی میخوام یک دو سه چهار من به عنوان مسئول تو جلسه قلاق آوارد رو پاسخ می بودم که بتونیم در حقیقت رفت رو توش بکنیم میگم به این ترتیب این موقع هست یک دستور عملی هست همطور جناهای آاضی را فرگوم مثلا در موردین محموعهایی که چهار ماهی متم خب دیگه هم ما کاتب می کنیم رونوشت رو به دبیر جلسه یا مسئول جلسه میتون جهت پیگیری از طریق ستاد تهران یا هر جایی این اگه این ترتیب جلو بریم تو هر جلسه مشخص میشه که دوستان چه توقعاتی رو داشتن بخش خدمت دهنده حالا یا دولتی یا غیر دولتی کجاهاشون میتونسته انجام میده گفته من اینطوری انجام میدم کجاهاشون گفته من پیگیری میکنم و به رو جلسه بعد مثلا مطرح یه موضوعی در این خصوص که برای که عمل عملکردمون و خروجیمون در حقیقت اوت بهتر بشه و به نتیجه برسیم. پیش من اینه که دوستان میگن آقا تو این زمینه ما این رو از فلان سازمان یا فلان مجموعه میخوان. مسئولش جواب میده و قضیه همشه. در مورد سازمانی که من مسئولیت رو دارم من از روز اولی که خدمت دوستان بودم خدمت های فرماندار دکتر و سایر دوستان عرض کردم ما به هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم دیگه تکرار بکنم مثلا ما آمدیم گمرک رو شبان روزی کردیم در فروژ گمروک رو در گذشته با <تصفح> کاری که ما انجام میدیم شاید روالا قانونیش نداشته نه ما داریم داری داری. نه چهار کهی داریم با تا آمول با همهانگی که انجام شد همکاران من در گمرک به صورت شبان روزی آماده انجام خدمات هستم یعنی ما هیچ محدودیتی در این زندگی نکنیم یکی پیدا میشه که من فلان ساعت میخوام کار انجام بدم من بگم نعفی رو توی جلس مزرم تو آقای اکبری هم ببوش بو کنم آقای اکبری آقای اکبری, آخن. آخن. اکبری بخش مخصوصی سی ما فاملی کنار هم همسایه ارس من یه روزه پس شما بسم الله رحمان الرحیم ارز سلام و صبح خیر و خیلی صبح نیستید صبح شدید اگه نهار میمخواست که دیدید نهار که قدام نمیدیم خیارتون راحت بشه <تصفح> <تصفح> <تصفح> خیلی خوش آمدید خیر مقدم عرض میکنم خدمت حسن پور و تشکر میکنم از, از ایشون و جنبای مدرس خیابانی که خیلی سریع تصمیم گرفتن عملیاتی کردم و یادم درم متخصص آشناب مسائل استان رو مأموریت دادن که در ارتباط با مباحث توسعه چابوهار حالا عنوان رو چرا بزشتیم توصیح چابوهار من عرض می کنم خدمت مستان برها معمولیت دادن که موضوع رو پیگیری بکنم تشکر می کنم از جنبای خرموندار و هم خیرمقدم عرض می خدمتشون حضور ایشون میتونه به یک نقطه اتصال و پیوندی بین همه مجموعه که در این مباحث میخوان نظر بدم باشن و ایشون هم کاملا در سوزانه و برحال حال از طبیعت خودشون که ما همه میدونیم واقعا دلشون بخواد کاری انجام بشه همیشه همه جا پای کار بودن این موضوع رو با حساسیت و وسواس بیشتری بگیری میکنن واقعیت اینه که در ارتباط با کارگروه گروه توسعه چابهار بعد از اینکه چابهار از تحریم ها در واقع اعلام شد خارج هست یه نامه ای رو ما نوشتیم باهای جایی که به هر این شرایط فیلی شرط فعلی که چابهار از تحریم خارج هست بیایم یه کار ای رو چابهار انجام بدیم اون این کار ویژه رو هدفمون هم واقعیتش یک باگ سیستمی بوده که وجود داشته در ارتباط با خروج از تحریم حل مسائل مشکلاته. کشور با این ظرفیتی که فراهم شده یعنی موضوع دیگری نبود باقیتش یعنی حل مسائل مربوط به تجارت و تحمیل و صادرات و همه چیزایی که الان امروز واقعا تو همه جای کشور میدونیم مشکلات حساسی باش درگیر هستیم منطبع از باب اینکه حساسیت ایجاد نشه و بتونیم مدیریت فضا بکنیم اسم احتمایی کارگروهی که میخواد تشکیل بشه باشه کارگ همون موقع ها خب این ارجاع خورد هم وزیر سمت، هم وزیر اقتصاد، هم آقای نوبخت و صحبتها و مذاکراتی شد، جلساتی برگزار شد در یه جلسه آی رئیس چمهور معمولیتی ویژه دادم با آقای که آقای مباحث مربوط به اینکه که ما چیکار میتونیم بکنیم از طریق چابهار و افغانستان چیکار میتونیم بکنیم تو شرایط فعلی بشینید یا پیشنهاد در بیارید آی نهاوندیان جلسه تهران گذاشت و به با باعثی مطرح شد دو سه جلسه بعدش رو نهایتا منجر شد به حضور خود ایشون در چابهار و خب یه مجموعی از پیشنهادات که آقای رئیس یک زحمت بکش هم صورت جلسه مربوط با آی نهاوندیان و اون پیشنهاد نامه کارگلی توسه ی چاباهار که باید جاگیری نوشته اونا رو بیاریم مجموعه اینها خب افتاد تو همین سیکلی که بعد سری امتیازات ویژه برای چابهار قائل بشیم که از محل این امتیازات ویژه ما بتوانیم قدری از مشکلات کشور را حل بکنیم. مثلا موضوع این نبود که ما مشکل چواباهار را حل بکنیم. نه چواباهار برای کشور میتونه چکا بکنه و کدوم بخش از مسائل کشور را میتونه حل بکنه. خب توان کارگروه که های در واقع زحمت کشیدن، آقای مودودی در استازمان توصیح تجارت نمولیت پیدا کردن که در واقع تولیت اون کار تخصصی و مباحث رو تو اون هم استاندار خراسان رزوی، هم خراسان جنوبی، هم جنوبای های مصموعی بهتی، خود، استاندار سیستان بلوشستان بودن و مباحث خیلی مفصل جلسات، فکر میکنم، سه چهار جلسه مشترک هم استاندار ها داشتن و حال توی اون یه ای در اومد. اون بسته نکاتی رو پیشنهاد کردن از جمله این که ما بتونیم در چابهار یه سری در واقع اختیارات گمرکی ویژه به گمرک بدیم. به این معنا که کالایی که در واقع میخواد بیاد به مقصد چابهار و عنوان مثال مسیرش افغانستان باشه یا در یک یارد گمرکی در چابهار قرار بگیره به صورت ویژه از اینجا تغییر مسیر یا تغییر اسنادی ایجاد بشه نره به افغانستان برای بعضی از کالاها بعضی از کالاها که خوب قابل رصد و کنترلن الزامن باید اسناد بره و افغانستان پاس بشه دوباره برگرده اسناد بره برگرده بعضی هم خود کالا باید بره و برگرده در بعضی از کالاها به دلیل هایی که دارن و راهگیری، قابل راهگیری هستن و حالات تجهیزات خاص هستن، اونها رو گفتن اصلا برو افغانستان بعد دوباره برگرد بیاد. منتها اون چیزی که میتونه نقطه اتصال باشه اینه که یک یارد ای رو در چابهار ما بتونیم تدارک کنیم، کالاها به مقصد چابهار، به مقصد افغانستان بیاد در داخل این یارد قرار بگیره. و از اونجا یه سری اتفاقات، و یه سری مباحثی رو بخونید دوباره. یک بخشی از بحث مربوط به تامین کالاهای اساسی بود که خب الان خیلی از کشورها و خیلی از کشتی ها به مقصد خلیج فارس بار قبول نمی‌کنن یا اگر بار قبول میکنن بیما های خیلی سنگینی دارن می‌گیرن الان همه کشتی‌ها و باریل شوران می می‌گیرن و این هزینه قیمت تمام شده رو خیلی میبره بالا بنابراین توضیح پذیر میکنه چابهار رو این دیگه اونجا بخش زیرساختی بود که حالا بحث توسعه انبارها و ظرفیت بندر و نمیدونم همبارهای طریق القدس و صد بخش خصوصی داخل منطقه اون روز گزارش میداریم که جلسه سیف اینجا بودن فکر می کنم. حدود سی هزار متر مربع همبار بندر داشت چقدر؟ سی هزار تا بندر گفتن داره، پنجا چهار هزار تا طریق القدس داریم، هزار تا ما داریم توی منطقه این 90000 متر مربع انبار که حالا ترکیبی بخشش مال خود سازمان بخشش هم مال بخش خصوصی انبار هست ما گفتیم خب این ظرفیت انبار ظرفیت خوبیه ما الان اگر بار سراзир بشه امکانی که یه دفعه سری انبار بسازیم وجود نداره ولی امکانی که تمام این انبارا رو می‌بریم تحت کلید و در اختیار گمرک قرار بدیم با یه مکانیزمی که باز خود گمرک در واقع تعیید بکنه این امکان خیلی سری وجود داره کما که در بحث طریق القود اتفاق افتاده و اگر الزامی پیدا بکونه در انبارای منطقه هم این امکان و این ظرفیت با سهولتی بیشتری چون تو محدودیت گمرکی کل منطقه این امکان رو سهولت وجود داره بنابراین یه بخشی این هست بخشی هم از مسائل مربوط به خود در واقع چاوار است و نقطه مهم دیگری که تو اون جلسه و اون کارگروه اومد بحث در واقع تسریع, تسریع قانون منطقه به بندر بود چون بخش عمده‌ای از مشکلات الان سر این ماجرا است همزمان هم سفر آقای لالهجانی رو داشتیم و اون مباحث مطرح شد خوشبختانه سرعت این تصویب این در واقع الحاق بنادر و توسعه مهد منطقه سرعت گرفت یعنی الان هفته قبل در کمیسیون فرعی تصویب شد الان مورد کمیسیون اصلی که در واقع کمیسیون اقتصاد هست انشالله برنامزی برنامه‌ریزی کردیم هفته آینده کل اعضای کمیسیون بفهم دولت بیان اینجا چابهار و همینجا دیگه تمومش کنیم یعنی رفتن تهران فقط در واقع جلسه نهاییش رو بذارن و جنبندی به شو در واقع نهایی بشه. مجموعه این اتفاقات یعنی اون بحث الزامات و ویژگی های خاص گمرکی بخش تامین زیرساخت خصوصا در بحث انبار و نهایتا بحث یک پارچگی قوانین و مقررات و اون تصریق قانون انتوازات به بندر که بتونه این ارتباط و پیوند رو برقرار بکنه سه تا محور اصلی زیربنایی حل مسائل و مشکلات ما هستن در چابه ها اینا پیگیری کردنشون باید کانال ها و مسیر هایی که میتونیم این رو پیگیری بکنیم باید توسعه پیدا بکنه در بحث خدمت شما ارز کنم که امده موضوع ما این های بخشیش مثلا تو مجلس بحث تسری قانون ما بقیش همه از دارد سمته خوشبختانه با این روی کردیم که جناب آقای مدرس تشکیبا بردن هفته قبل خدمتشون دو هفته قبل خدمتشون بودیم و نگاهی که ایشون داشت واقعیتش من امروز خدمت آقای حسنپور پور عرض کردم یه فرصت تاریخی برای ما پیش اومده از دو بود یک مقام وزیر در بحث بازرگانی اعتقاد راسخی نسبت به این موضوع داره و آگاهی کافی داره دو از اون مهمتر کسی رو مسئولیت و مأموریت داده برای این موضوع که اشراف کاملی به مسائل استان داده و دغدغه‌اش رو هم داره، تعهدش رو هم داره، ضمناً اون برای هم این اعتماد وجود داره یعنی ما هر آن چه که امروز نیاز داریم از وزارت سمت به ما برای اینکه این مسائل و موضوعاتمون حل بشه، رونق ایجاد بشه، اتفاقی بیفته، امروز نیاز داریم رو باید مکتوب بکنیم همین مکتوبه رو ما میتونیم توسط جناب‌های حسنپور زحمتی که میکشن و معمولیتی که بهشون داده شده، به درستی میتونیم این رو در مرکز پیگیری بکنیم و مسائل موضوعاتون رو حل بکنیم. برای با این در واقع مقدمه خیلی طولانی میخواستم بگم که ماتسر آقای فرمودار توی شرایط خیلی ویژه قرار گرفتیم. کار هر رو که باید ساعت‌ها من شما باید توجه بکنیم، مستقل بکنیم، ببریم بازدید و. بر حال شیوه های مختلفی رو به کار ببریم که به آقایان وزرا، معاملین وزرا، به کار رو برای ما انجام بدن جنابای هستم پر به راحتی زحمت میکشند بنابراین این رو هم از ایشون تشکر کردیم که به قبول زحمت کردند و همین که این فرصت و تاریخی رو برای خودمون مختل نمیشماریم و انشالله بتونیم از این فرصت استفاده درستی بکنیم من حالا در همین راستا فکر میکنم مهمترین کارهایی که برهاز عنوان، خروجی این می میتواند به مایه کارگروه دو تا ماموریت اصلی وارد داشته باشه در اساس اون تعریفی که ما کرده بودیم یکی اینکه مساله اساسی الان بنایی که الان مطرح کردن بحث تصدی بحث نمیدونم مسائل گمرکی به صورت ویژه واقعا مسائلی که الان با گمرک داریم دوستان الان بخش خصوصی هم اینجا نمایندهشون حضور داره گرفتاریایی که دارن دستگاهایی که حالا چه زینف ان چه طرف دولت هستند باید کار رو انجام بدن هم مسائل و موضوعاتشون رو مطرح بکنن به عنوان مسببات این جلسه اگر دستوری مسببه ای از دولت یا از کارگروه یا از وزارت خونه خاصی میخواد زحمتشو بدین با آقای حسنپور دنبال بکنه یکی هم حالا در ادامه باید ما این اختیار رو برای کارگروه حسنپور بگیریم که بعضی از موضوعات رو همونجا خودمون تصمیم بگیریم مهم‌ترین ایشان یه چیزه آقای مظلومی مدیر گمرک ما اینجا باید اختیاراتش حد باشه و اگر تصمیمی گرفته میشه بعضی از موضوعات به ایشون تفویض بشه که اینجا بتونه ایشون حل بکنه یعنی ما اگر الان موضوعی داریم در ارتباط با حالا این شرایطی که ارس کردم کالایی رو می‌خوام تغییر مسیر بدیم تغییر اسناد بدیم یا به حال اتفاق خاصی در مردس بیفته افتاد فقط در کنترل بخشنامه های گمرکی هست این رو اگر ما حالا خدای مزنومی شاد بهتر پیشنهاد بدم که ما چه چیزی رو بخوایم که ایشون دستش بازتر باشه بتونه کارشو انجام بده چه چیزی رو بخوایم که فلان دستگاه دیگری هم که داره خدمات میده دستش واسع‌تر بشه مثلا سامانه سبت سفارش رو نمیدونن بسایی که در وزارت سمت هست و آقای اکبروی آقای کار چه چیزایی می‌خوان که اینجا کارشون بهتر انجام بشه یا هیچ این وجود نداره یا صاحب کاله تو جلسات بعدی حتی من معتقدم مثلا صاحب کاره ها رو هم بخوایم مسائلشون رو بشنویم بگیم ما شما چی می‌خواید از ما که ما بتونیم مسائل رو حل و فصل بکنیم انجام بدیم این به نظر من مهمترین مأموریت و پرو این بحث هست. حالا در کنار این بالاخره ما وقتی داریم دنبال خدمت به اقتصادی کشور هستیم برای اقتصاد خود اینجا می هر هرچند که اون اثر داره یک کار خاصی رو هم خود منطقه و خود مردم و خود تجار و فالن اقتصادی جا انتظار دارند نمیشه انتظار داشته باشیم ما بیام کل نیاز کشور رو از چاوار تعمین بکنیم بعد تو خود چاوار مشکل داشته باشیم و میگه آقا شما کل برنج کشور رو در این چاوار رو میدید بعد برنج تو چاوار گرانتر از تهرانه این نمیشه این خوب نیست یا مثلا ما الان بیایم مجوز بحث تامین قطعات و نمیدونم بحث های و مسائلی که در حل میشه رو برای جاهای دیگه حل بکنیم بعد چابهار هنوز مشکل داشته باشه بنام یه بخش دیگر هم مسائل و مشکلات صرفی خود چابهار است الان مثلا مثالی که الان آقای آزادپیرا اشاره کردن ما 16 تا لنج الان داریم که بیش از 4 5 ماه درسته حدود 4 ماه 5 ما تو اسکل موندن خب اینو الان بازم تدبیر خدای مظلومی بوده میگن آقا بیام ببریم اینا رو حداقل لنجا را آزاد کنیم اینا ببریم تو کانتینر خالی بکنیم تو انبار بذاریم ولی برحال کنترل شده و با همون فرمولی که خودشون میگن تا بتونیم یه فکری براش بکنیم دو الان پنج تا مثلا دو تا لنج که پنج ماه مواد غذایی تو اسکله تو شرایط جبی آب و هوایی تو اسکلت من فکر نکنم مواد غذایی دیگه قابل مصرف باشن تو یه از طرف حالا این موارد رو مستاقی باید بیاریم اینجا یه صورت جلسه ای بکنیم بعد به استناد اون هم جناب آقای حسن محبت میکنند تهران به حال مسیری رو که لازم هست براش تهیه بکنن هم جناب فرماندار که خب بالاخره انصافا انصافاً روز پای کاری این موضوعات هستن یعنی هر چی مراجعه بشه انجام میدن. آقای مظلومی هم که به هر حال مجری هستند، یعنی چارچوب و مجوز ها و زوابطش رو میخواد که کار رو انجام بده این برای اینکه خب چون هم تقریبا جلسه اول بود و ما خودمون بالاخره از ذهنی نسبت به موضوع و هدف فهم مشترک پیدا بکنیم حالا ادامه مسیر ببینیم که چه کارهایی رو میشه انجام داد و چه رهنمود های جناب آقای حسنپور دارن و خدمت های فرماندار در پایان جانبادر باشم البته از اینجا بعد دیگه اگر دوستان بحثی دارن به نظر من هر کسی ای داره حالا مسائل و موضوعات رو مطرح بکنیم من به نظرم من یاد سه تا موضوع اصلی که از زیر ساختی هن رو عرض کردم راجع به موضوعات در واقع خاص منطقه هم همین بحث لنجایی که الان توی اسکل وجود دارن و کارباری که وارد شدن و بالاخره ترافیکی که داره ایجاد میشه و مسائلی که داره این بخش رو بهش اضافه کنیم که حالا تدبیر بکنیم نمیرم به هر حال بحثش راهی مظلومی شاد بهتر بتونن پیشنهادش رو تنظیم کنن که چطور پیگیریش رو انجام میدیم که مسائلش حل بشه و بقیه موضوعاتم اگر نکته‌ای دارن اشاره بکنن که در پایان خدمتشان و استان پور برای با قاملی فامدار محترم باشین برای جمع بندی موضوع این ببخشید خیلی طولانیش کردم برای اینکه اول ذهنامون رو نسبت به موضوع یکی بکنیم توی مسیر قرار بگیریم بعد حالا ما رو پیش ببینیم خدمت داریسی زنگیشم آی اکبری شما بس اسم یکی شورا آی اکبریس ما مطلب دارم آم میاد به شوراهای توصیح بندر چابه ها ما باید تخصیصش میکنیم شوراهای امور بازرگانی چابه ها داریم دیگه مثلا توسعه توییم همراه نقل را و خطوط هوایی هم شورای پس شلوار طویی گردش کنی، پس شلوار یکی این رو من خواهش میتونم بیم ازش پیشتر تا. در این زمان که ایک دارین چی پیش؟ درات آن زمان بارها، در آن زمان بس باز ارگانی، پیشنهاد فاسینه داری؟ فارغ از که ما دوست دارم دفتر من بدهم تجربه سطح اند می‌دهم انشوم است. وای مثلا مشکلاتتون اونی بیگیت حالا با این مقدمه که من گفتم. تو بخش دوم شما الان مسائلی که الان دارید رو همه رو بگید یه چیزش ممکنه همینجا با حال رهنمونده آی فرماندار دوستان همینجا حل بشه اونایی که قابل حل اینجا نیست رو زحمت داریم باید هستنپور که کنم مشمش ما بیش از 1500 ترون فعال جالی داریم داخلیم متاسکانه شوید بدم میشه بسید من درست اینا و روزانه داره مغازان خواهی میشن. خدا بزرگ قانون فام. الان از 2020 شد بگم چی اون سو رو میشه دیگه سواری خالی شد. روزانه هم داره متأسفانه خالی میشه و عواقب این داره مثلا فاالینو میشسته من که از بعد از تاسیس دارم با بیش از با پیشنهاد 1 میلیارد بدهی بدی بگم فرات هر شب داخل مرکز تجاری بحث بدهی این کارو میکنه. سلام آقای وکلا شما داخل یعنی من اینجا سکل هست بلا تکریف یه سرمایش کلان خوابیده من در برای اصلی فاعلی هم هم این واقعا اگه امکانش نیست که دیگه سرمایش رو بردارم برای اکسان تو دوست رو مراجعه می کنم تو این هم قبول می کنم که اومده دیگه دیگران این دوستان هم دیگه واقعا اونی که قدرت من نبوده ضعیف شده آقایه که کالاش داره میگم اما من خواهش غذای شیشت الارد اینکه می روید که سبسوارش برای منطقه آزاد خلاف قانونه ما خواهش می رای اصنفور بگیریم وضعی باشیم انشاءالله که باست بر برای منطقه آزاد حتما انشاءالله انشاءالله فتره شیم نمون مطلبی جا من خود کنم گیرزارا این این خودشان با کل کشور خانی ما شاید بله؟ خوشミ <تص> که اردی چیش می‌باد شدی که درصد کاریش باور داشتیم. بله. من من من من به نظرم میاد که موردش این که رو حساب میکنیم به در کل بعد از انطلاق بالاخیه حرکت انجام شد یه جوری که داده ای جو آمار با ثبت بشه ما تو بحث بل پروسس داری که تنها هست که ما میگیم پروسس بل پروسس داریش رو تاقدر مرتفع بکنیم یا کمترش بشه راحت بشه تسهیل بشه نه اینکه صورت مساتر رو پاک بکنیم که واقعا هیچ عنوان آوار روان ثبت نشه اصلا اینطور نیست تا یک بریم چون اینکه ثبت آمار با ثبت سفارش خیلی فرق داره تنظیمش بکنیم مگر ما پردا ثبت آمار نداشتیم ثبت آمار داشتیم ما گمرک داریم مستقر سیستم داره که یک قلم کالا یک خودکار وارد میشه تو منطقه ثبت میشه ثبت آماری با ثبت سفارش دو تا ماجرای کاملا متخابر اثر اینجا ما بحثی رد در ارتباط و با ثبت آماری نداشتیم هیچ وقت هیچ وقت نگفتم آقا شما از ما نخواهید ما تو فرایند ثبت سفارش و پروسی که داره انجام میشه استعلامایی که گرفته میشه تاییدیاتی انجام میشه در واقع الزامات و مسیری که داره تیمی میکنه با بحث سبت آماری فرق میکنه ثبت آماری این هست که هر کالای میتونه بیاد در ورودی منطقه آزاد گمرک منطقه آزاد مستقره ای داره که این سامانه هم تحت کلید گمرک هست هم تحت کلید دبیرخانه شورع عالی هست و هم هر کسی دیگه که بخواد بهش دسترسی کلا بکنه دسترسیشو داره تا این همینجا ثبت میشه ثبت سفارش شما خودتون استادی دیگه اصلا این مفهوم من... کاملا متفاوتیه با ثبت آماری من میکنم. میگم سبت شما از میگم با ثبت سفارش ثبت آماری بشه ولی بس برای اینکه بالاخره اون ثبت آماری خود حالا شما مستاد دوستان بشه اون رو داشته ارزی <تصفح> بالاخره روز سازوکار ارزش به نوعی مشخص نمیشه امروز دولت دنبال سازوکار ارزشه شد بالاخره مشخص باشه ما ما نیاییم بیاییم ما میگیم ما تسهیل بکنیم روش رو تسهیل بکنیم که هم تاجر در بالاخره تو بحث واردات و صادرات جوهرتر باشه همین که دولت بدونه که حساب کتابش کی هستش من از اینکه 40 سال داریم کار انجام میدیم کار بازرگانی میکنیم خود شما مسترزین دارید میبینید که از سال گذشته اعلام کردن آقا مثلا در 40 میلیارد دلار ما صادرات داشتیم آقا 23.5 میلیارد داریم واردات عرض بر نداشته خب میبینید ما نزدیک 30 خرداد این سال ما آمار ند داشتیم اطلاعات ند داشتیم خب این چه بعدم روز دولت میتونه کشور میتونه داشته باشه اینا عامل میشه که بالاخره کشور میتونه در شرایط جنگی کلام قرار بدی ما میتون بکنه. پس بیاید جایی که ما بگم همشو از قبل میگیم بعد نه ثبت سفارش بشه یا ثبت آمار بشه بالاخره یه روند دیواری موضوع رو تعریف کنیم که حداقل هم دولت بتونه برنامه‌ریزی بکنه هم بالاخره تجار ماذره گاران. روی قضیه و این موضوعه که شما دوستان می‌فرمایین بله این مشکل نه تنها تو منطقه آزاد است خب ما تو خیلی از شعرا دیگه هم داریم شما بعضی موقع تو شب بالاخره رسانای گروهی می‌بینید که فضا فضای رکود هست و داره خیلی از واردای سنفی، واردای تجاری ما تعطیل داره میشه ولی خب حالا بحث رو تولید بالاخره باز حرکتی داره ایجاد شده این رو من می‌خوام بگم زیاد حرف آقای درست هست که آقا تعطیل شده داره بالاخره ولی این رو محدود نکنیم آقا چون ثبت سفارش داره انجام میشه داره چه ترتیب می‌شیم به مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم مصطفی کچمانی و سلطان قسمت لری من یه پیشنهاد دوستانه دوستان دیگه هم داره که واقعا موضوعات تجاری دوستان در منطقه بنوئی حربشه خب از زمانی که اول اصلا هم سازمان رو بوده داشته من از همون زمان پیگیر بودم که یک باید در نو وستان اتاق بازرگانی مستقل داشته باشه خیلی از مسائل امروز اتاق بازرگانی وسطان ديال زاهدان مستقل هست فقط امور زاهدان و زابو رو پیگیری میکنه یعنی فقط نگاهش نگاه میرجاوه است نگاهش به ایور نیست در واقع به سمت سراوان و ایرانشهر و بخسان چابهار نیست من پیشنهاد میکنم جهاتی که بغض تشکل صفی قوی هم داشته باشیم و تو امورات که واقعا این تشکل ها میتونن این موضوعاتی که امروز ما دوری میز نشستیم را بگم خیلی اگر یه اتاق بازرگانی مستقل ما می داشتیم خیلی وقتی شاد موضوع حل شده بود. ولی چون نداشتیم و نگاه دوستان فقط نگاه بیر جاوه هست به نوعی تالا نتوسیم بر انجام دیدیم. من خواهشم که می این اجازه رو حتما دوستان بدم چون قبلا مقاومت می به نوعی می گفتن آقا باید یک اتاق بازرگانی باشه در حالی که هم اتاق بازرگانی زدارم اگر اشتوان اتوان جواب، شما استاد من است. اتاق بازرگانی کشاورزی یک بزن. اتاقه ولی درستان مشتریف، صناعی مادن و کشاوردن و زاهدان، یا هست یعنی عملاً ما در یک با توجه به توسعه و با از که هست حتماً نیاز است که ای این اتاق بازاری در اینجا تشکیل بشه موضوع لاز... هملونه رو تا جا رو فرمودن، پیشنه هم شد که ما خبتی ما آدوستان بگیر بکنن، سهنگی لاستیک، حالا گفتن سه تا رو یه واقع سه تا که نه چهار تا. برید فقط به بندر به عمل ما ام الان ما واردات لاستیک از اینجا دارین لاستیک از اینجا هم میشین میره تهران باز هم لاستیک رو باید با تو سیستم سامانه بخوام دوباره کوزی بکنیم که این خودش یه فرایند پیچیده داره و مشکل هم هست وقتی برده این لاستیک رو وارد میکنیم و میگیم از لاستیک رادیان استفاده می‌کنیم این سامی مختص بندر بدین ما نمیگیم به پای پایانه برای ما بوروکراسی داش زیادتر میشه به بندر بدید که هر کی بار می‌خواد تو بندر تقریباً دیگه بکنه، این عامل بس لاسی میشن باشه روغن موتور هم همین کارو میش کرد. روغن هم میشه براش اونم تخصیص گذاشت چون روغن موتور هم باز برنامه باز شبکه داره این رو همیشه هم براش برنامه گذاشت که بیاد تو این مجموعه انشالله توضیح الله بشه این عامل این عوامل فکر کنم به اون حمل نقل رو اون غلغلات میده که هر به سمت چابهار حرکت بکنه در خدمت شما مصاحبه می کنم برای از خستان ورشت مجدد در خدمت هم یه پیشنان و برای این بحث کارگلو خودمون دارد اول با می اون نقاط قوت و پتانسیلی هایی که ما داخل خود حوزه حوضی داریم کنار را احساب کنیم و ایدوت کنیم این موقع ذرکیت فرض و مساس اداره سمت اینجا چیه اداره قدل چیه گنگروب چیه این ها را در وحل اول احساب کنیم بخش دوم اونشه که ما نداریم و از به صلاح تهران بگیری کنیم دیگه ما این کمک رو از تهران نیاز داریم بخش از این وجود مواردی ای که ما توی حوضه قانون و بخشان ها داریم که دست و تو جا هست اینها رو باعث ما احساب کنیم بعضی از اینها اصلا داخلستان رو حل نیست یعنی نه بنده، نه آقای مزید می نمیتونیم به صلاحی بخشانه ای بخشان که کوتاچ کنیم یا بیش کنین ایشو بوسن اوتوجی در تمام شب خرمش نمی کنی ولی شیکاستهش این مداد دیگه تون دستگاه نزاداتی و انگی سال مقابل همیشم اجازه مدل چن که اعتراض دارانم مام پیشنهاد واضی میینه که ما تو حوزه استاد داشته های خودمون اول بگیریم الک بکنیم. وا چی داریم؟ و این گیرگورو کار ما کجاست اون وقت میایم روی بحث داشته هامون که به سبب در دیگران باید کمک بکنه اهمیت رو که دکتر کردی هم, هم اشارهش داشتن الان نگاه نگاه خیلی خوب و مثبتی داره منطقه ما هست و از این فرصت شاید واقعا این فرصت دیگه مثل 6 ما دیگه 5 ما دیگه نباشه ها ولی ما باید از این فرصت نهایت استفاده رو ببریم من نگوام که این بخشه حالا روی بحث های قانون خود تجارت و قانون صادرات و توسعه استخراج استتاموری اصلا نبا تو این بخش ما ورود پیدا با این نگاه چون سپتامبری هم دقیقاً این موضوع جداگانه جایگاهش هم واسه ترمه سپتامبری جایگاهش تو خود حوزه سپتامبری واسه فرق می‌کنه هرچند سپت سفارش شما ما اینها رو حالا اینا بحثای کلیه که می‌تونیم از طریق صدا مرکز این موضوعات رو حلشون بکنیم اما یه بخشی داخل خود مجموعه خود رو داریم اگر این هم افسایت رو خود استان به شهر چابهار ما قرار بگیره، ما خیلی توان داریم توانم خیلی بالاست اما چون به تنهایی داریم حرکت میکنی، هر کدوم به در حرکت میکنه، قطعا توان ضعیفه. ولی وقتی کنار هم برادر میگیریم، مطمئن هستم که ما تو اون توان لازم و هم پیدا میکنیم و هم میتونیم اجرایش بکنیم. حالا ما نقاط زد به تانایی شده است تو حوزه استان که ما چه جایی های هر به اون بخش اجرا ضعیف هستیم. این تو حوزه استان، دیگه همشان شده. این ای که ذلیک آقا آرزو داشتنگو من نمیدونم ما تو این جلسه دنبال چی هستی؟ چون همینا بحث شده همینا ما قبلا کد روش کار کردیم کد روش اومدیم ایده دادی نظر دادی پیشنهاد دادیم حالا امروز مثلا میگه آقا خب باید الانمات بگی آقا نتیجه اینا چی شده؟ باید ما تو این بخش حرکت بکنیم من تو ابتدا این بخش هستم تمام من واقعا نمیدونم حالا ما چی می‌خواد این جلسه پای دکتر کلی که اشارهیش داشتن خب این مقداری به اصطلاح وضعیت موند چون واقعا گون بود ولی من آقا ما چی میخوایم؟ من این بحث رو ما همه رو هم اجر... بردیم تو اجرا داریم کار انجام میدیم. الان باید بگم آقا بحثی تو کار به کجا رسندی؟ کجا ای کار تلان گیره؟ باید این کار دارن گیری؟ وقت بند دوباره این دیگه الان اگه بخوام بیام این ها ما چه زایکت داریم چه کار کردیم؟ الان از میکنم برگشت به عقبه. یعنی اصلا ما دیگه داریم در جا زنیم. من از میکنم. یه نکته من عرض بکنم که از فلسفه در واقع اینکه این موضوع رو من اصرار داشتم که تو این مسیر بیفته به یه مجموعه اینجا شکل میگیره و محلی در واقع بتونیم دوباره دوبال بکنیم اینه که مجموعه های مشماره ببینیدن هم مثلا فقط کاردروهایی که من شرکت کردن تو این چند وقته در ارتباط با چابا رزارت امول خارجه معاملات دیپلماسی، اقتصادی 6-7 تا جلسه تو خود وزارت امور خارجه حوزه در مجموعه نمیدونم خروج از تحریم دارم اونجا دوباره همین بحثا مشابه مجموعه تشخیص مساله نظام دو هفته پیش جلسه گذشته رو دعوت کرده بودم مربی اونجا اصلا دیدیم روز از نه روزی از نه. سازمان توسعه تجارت همینطور خدمت شما عرض کنم که وزارت اقتصاد در یک مجموعه دیگری همینطور همین بحثا مطرح است در خود دولت مطرح است جاهایی که دارن این مسائل رو مطرح می‌کنن، زیادن همه هم هم همین مباحثه منطقه چون متولیی در این حوزه وجود نداره و کانالی برای پیگیری وجود نداشته تصمیمات خیلی خوبی گرفته شده این این اولی که ما بای جانگیری نوشتیم کارگرور رو پیشنهاد کردیم اصلا همه حرف‌هایی که تو همه مدت زدن همین آستان، هیچ حرف جدیدی زده نشده، همین غالبه منتظر فرمایش شما این باید پیگیری بشه کانال پیگیریش اینه که امروز ما یه موزلی رو اینجا برخورد میکنیم باش این موزل مربوط به گمرک میشه از این کانال سری وارد بشه بره رو از گمرک بگیره برگرده بیا کارش انجام بده امروز یه مشکل دیگه ای پیدا کردیم راجع به حمل و نقل و پایانه‌هاست حمل و نقل و پایانه ها باید بیاد کاری ما هم اون فرماندهی مهمه کار رو انجام بده این صدادر فرمانده راهی مدرس شابونه که جلسه قبل اینجا بودن ما مطرح کردیم خیلی خوب گرفت مطلب رو رفت مسیرش هم داره فراهم میکنه دستوره خیلی خوبی امنید انا دستور من دیدم اینجا یک در جریان باشید برای برنج داره موضوع برنج رو تبدیل میکنه پایدارش می‌کنه و سهمیه بدید به چابهار اینقدر واحد اینجا موجوده زمینشون رو بدید ما مدیم الان همین 20 واحد موجوده ما هزار تون رو در یک شیفت و شیفت میدن اگر سه شیفت بکنن یا مقدار افزایش در واقع ظرفیت بدن با همینا ها و واحد هایی که الان در در درخواست هستن ما 500 هزار تون برنج می‌بریم به کشور. خب 500 هزار برنجی که الان ما به کشور می‌تونیم بدیم صرف جوری ارزش اشتغالش به حال تأمینی که در انجام میده بحث پدافند غیر عاملی که توی مجموعه داریم و همه مسائل دیگرش خب یه اینه که به حال انتظار در واقع در راستای همون فرمایش جنابالی انتظار این هست که ما تو این مسیر حرکت بکنیم که بتونیم از همه این پتانسیلا نکته ما من این روزی بگوتم ما باید چقدر پول میدادیم چقدر تبلیغ میکردیم چقدر هزینه تبلیغات در دنیا میدادیم که به اندازه یه جمله کلیدی ترامپ برای ما اثر گذار باشه و حساسیت همه را نسبت به ما برانگیخته بکنه آقا همه ایران تحریم به جز چابار همه حساس شدم چاواری خبریه و این حساسیت رو 11 سال قبل مقام رهبری اشاره کردند دولت مدت هاست در موردش داره حرف میزنه. اما بدنه دولت واقعیتش قبول نداشت دو سال قبلی موضوع. الان میبینی تو همه وزارت خونه ها راجع به چاوار دارن صحبت میزنن می میز چاوار ایجاد کردند. این فرصت تاریخی برای ماهایی که اینجا داریم کار میکنیم و متولی هستیم متحدیم، بگیر موضوعاتش هستیم از این فرصه با درست استفاده کنیم. ظرفیت اصل کردم واقعا تکیل می کنمم. الان این مجموعه است که میتونیم هرانچرا که ضرورت و نیاز ما هست ببریم در یک کانال مشخص و روشنی و ازش خروجی بگیریم به نفع استان و منطقه و بر حال چابهار و کمکم به اقتصاد کشوری کل ماجر است حالا هرانچه که می تواند باشد. خیلی هم به موضوع بخشی نگاه نکنیم. من بگم با من منطقا این که اگر به من بدن خیلی خوب میشه. و مثلا بذار من برای خودم این بسدی چیزی بگیرم یا مثلا دوستانم بگن آقا نه این اگر این اتفاق بیفته اینجا مثلا حوزه ما کاهش افزایش پیدا میکنه یا نمیدونم هر کدوم دیگر از مجموعه از گمرک که ری الحمدلله با آقا حضور آقای مظلومی مسئله نداره ولی میگه آقا اینجا بالاخره پای من آخر رو گلو همتون من اگه بگم میتونید انجام بدید نگم نمیشه. این نگاه ها رو که حال ذات و خاصیت این جلسه و این فضا همین هست که این نگاه رو ما غالب بکنیم و از این فرصت تاریخی که برامون پیش اومده استفاده حد اکثری بکنیم. دوستان دیگه نکته صحبت. من جنوالی باشیم. آقای فهمون دارم. جنبانی فهمون دارم. باید. ما ملی چه پیامی می چشم در ان شاء الله نتیجه بگید. مجید انتشاری کورم کولم از جانب آقای فرماندار و ماما. آقای مهتر مستاندورا جنابعالی کورلی وقت گذاشتن جناب پنزیری کا دستور تشریف آورد ان شاء که بتونیم یک نتیجه واحد برسیم. دوستان صحبت‌هاشون رو کردند. اول ما تکلیف خودمون رو باید مشخص کنیم که ما کجای کار هستیم. در تهران که میشینیم در سطح ملی تماما هممغم مسئولین کشوری رو بست چابه ها را هست الان از روزی که مدرس اینجا اومدن آی استاندار تا جلسه در رفتر آی مدرس داشتن یعنی دو جلسه دومی تمام افرادی که همراه استاندار اومدن دوباره بلند شد رفتن دوتاقش بعد برای جلسه تشکر کردن که اون نگاهی که ما نسبت به استانداری شما چند برابر دارید الان از زمانی که آهی مدرس اومدتان این تمام مکاتباتی که از آهی مدرس دراتا چابهار انجام دادن در حوزه مختلف تکلیف کرد به شرکت بادر دولتی ایران که پنجا در سر از طریق چابهار وارد بکنه به پشتیبانی موردان همین تکلیف انجام شد که اونم دستگیراتشون دادن انجام میشه به شرکت ها به مابندتان امور سنایه و ایرو و ایمیدرو اعلام شد که قطعات خودرو وارد میشه خصوص از خراسان از طریق بندر چابهار صورت بگیره بس دو سر بار حمل کالا از بندر چابهار کامینهایی که میان که خالی میان گفتن بس مواد معدنی از طریق چابهار صادر بشه پیگیری انجام دادیم جلساتی قبلا روغزی چابهار بود عبور می‌بیدن تحت عنوان میز افغانستان های کردی قوی مدرس گاشین بود که با میز افغانستان هست حس همون چابهار بنوی خاشی بنستون خراسان خراسان جنوبی و خراسان رزمین اینا مدعی کار هستن اون کارش یک گستره خاص پلشه داره بنابراین شورای از اون میزبخستان جدا بکنن به صورت معجزه‌ای کار پیش بره که اینو انجام دادن رو بحث کشکی ها که الان داره بارون میشه ما باز زیر ساختو اینجا داشته داشت باشه در بس انبارها الان ما دارین اعلام میکنیم الان توی اداره بندان میرم میگم ما مثلا 20000 تومن ظرفیت دارن غله دارین این حد در ستو وسان اموالت هست ولی زمان عملیاتی میشه خیلی زنبارها با تحت کلید گمرک خرید بگیرن گمرک آیتم های خاص خودشه داره اینا رو باید لحاظ بکنن نبونن اینو باید صورت بگیره آی مدرس نگاهش میورد که کلا نگامالی گرفته میشه در 100 وسان انبار های در 100 وسان هست تا زمان خط ریلی را نشده بعد از کالا امکانش هست بره زایدان از زالن سری خط ریلی جا بشه در سطح کشور بره یا بره تو حتی تو انبارهای زایدان دپو بشه اینه که روبست انبارها بیشتر ما باید کار بکنیم که یک ساخت مهم روغازی انبارداری هست اینه یکی از مابدنت های وزارخون مکاتب روغازی مکاتب مدرس کرده بگنند که و جز زیر ساخت فراهم اطلاعاتی غلطی بشاره داره بیدن. زیر ساخت همس فراهم شده انبار نداری نه که راستو خوبی آموزش دادن که نگاه و عزم دولت اینه که اون اتفاق بیفته ما باید همراهی همکاری خودمون داشته باشیم بنابراین به صورت بخشی کارو نباید دنبال بکونیم تاکید آقای استاندار بود که توی جلسات شورا به خاطر تصمیم گیری صورت خود مدیران حتما با شرکت داشته باشند توی همین هفته قبلنای اقاندر تیران داشتن، تکیلشون هم بود که جلسه سریعتر برگزار بشه و گفتن با جای باامری هم به اطلارسانه میشه که از نماندی سرای استاننددار دری جلسات باشند و اینا رو از طریق چابه ها رو در سط فنا بتونیم رسر بکنیم. اون تخفیف سود باززارگانی هم متف گمروکی، توی چابهار ما با آن مشکل داریم تو سطح کشور براساس مسابقه که اعتبارن در سال 81 اشتاسه بوده مسابقه دولت بندر چابهار پایین ترین حد داره ده درصد هست در حالی که بنادر دیگه بنادر جنوبی جدایی از این که تو منطقه آزاد هستن اون تخفیفات داره بنابراین 15 درصد تخفیفات مالیتی دارن فات مثلا 20 درصد در درصد سود بازارگان کلی من نفشون هست ب نظر ساانه ما در چااه ها اننجوری نیست به خاطر یک اسکلا ششتی جدا من آزار نیست این هم یک از مزلاع مضلات است که پیگیری داره میشین و آ مدرس پیگیری کردن صورت دردارسهشاواده شده و در حال امض کمیسیون بادی یک که اعضا کمیسیون مادیه کها میبرم تو دولت بیننو اینو تصویر بکنن که حداقل سی درصد بشه یک مشابقه بشه برای بندر چااه ها، اونو تصفیه قبلا داده شده برای بنادر جنوینی مثل خرمشهر رو بس مسئله جنگی که ده ده بوده که یک درصد درات بالایی بوده که دیو دوران گذشته حالا مشارات ویژه تو وسامون داریم و بس تحریم و اون تخفیفاتی که باید اینجا ولاده بشه بهره گیری مناسب از ظرفیت‌های مبادهای بسته‌بندی برنج هست که اینم در صورت ویژه اینو جدا برنامه اولویت‌های کاری هست که آقای مدیر ابلاغ کنه رو ما دنبال بکنه باید وارد بشه همین صنای بسا بستاندی که تو مناطق ایجاد شده فراوری بشه بساوندی بشه بر اساس اون فرهنگ و که هست سطح کشور توضیح بشه جلساتی هم با بانک مرکزی گرفته شد راهی شکوهی رو قضیه مسائل ارزیشون به نوعی حل شده این حالا یه جلسه‌ای هم ویروس ساتوسی بود که من نتیجهشو خبر ندارم ولی آقای مبرهن گفتن پیگیر بکنه بنابراین دنبالش هستیم که اینو به صورت ویژه دنبال بکنیم تو منطقه چابهار اتفاق بیفته اون وضعه چابهار بحثی دیگه که هست اون شهر لوجستیکه که قبلا هم مثل مطرح شده بوده بندر چابهار بانوان منطقادات چابهار بندر شهر لوجستیکه کشورهای مختلف مثل سنگاکور مثل امارات کالا از یک کشور وارد بشه اینجا به صورت ارزش شخصید اجاز بشه و بتونن صادر رو بکنه داخل کشور رو بره یا جاهی دیگه این هم یک کم دیگه هست که مورد قبول های دکتر مدرس ها قرار گرفت گفتین من میتونم تر بکنم که روح قضای بحث تحریم که ما میتونیم بهتر از این وضعیت استفاده بکنیم راه اندازی کشارگاه های در سطح استان هست با به امکانات فراوری و سبندی خزناش که بلکه کشارگاهی در سطح استان هست این علاوه حضور حوزه شورای جلسه آخرین جلسه برگزار شده هفته قبل مصوب شد که ماهیانه 5000 تن گوشت از ستان بسندیه بشه به در کشور تو خصوص تهران توزیع بشه باشه که تاکید شد بین کشبانی ورودیان شرکت غله شرکت غله 500 تن قبول کلان 2000 تن کشبانی ورودیان و مابقی هم اسناف تهران که اینم دیگه برای خرده‌فروش واسه میشه همه از طریق دریا اینجا وارد بشه و هم از طریق ابادی مرزیمون در افغانستان و پاکستان. مورد دیگه پیگیری تخفیفات کشیرانی دو بندر هست. تو بندر اینم آقای مدرس با رئیس سا... کشیرانی صحبت کردن چون یکی از مشکلاتی که تو این منطقه هست خط کشیرانی نیست و اکثر هم خاطر کشی اون میره طریق جبل یا جای دیگه کار انجام میره قرار شد که هوی مدرسان تیم برادران رئیس کشیرانی هم هستن باشن صحبت کردن گفت گفت برادر اختیارم دارم هرچی بگم باید مجبور اجرا بکنم سبسی تام میتونن ساز بله بله سبسیت زرا سبسید میاد اگر سبسیدشو بدن هم. شش ما سبسید بدن آقا این بحث کشیرانی مون حل بشه همه مثلا دیگه رو خود به خود اینو با زادبون صحبت داشه دکتر گفت روزی تو مراسم معارفش بودم اونجا مطرح کردن که خزی چاور تو هر جلسه هم که میرن وای مدرس بلااستثناء از چابه ها یاد میکنه. نام بیوره پیگیر هست. هم برادرشون صحبت کنه که شیرانی رو واسه قضای سوبسیفشان به آی زابون قرار شدن هم پیگیری میکنن و نتیجه‌را بهشون بدن. یعنی گفتن ماجرا میریم جلسه میذاریم. وای مدرس گفتن ما 40 ساعت دیگه میگم به چه نوی انجام بشه که ما بتونیم سریتار رو واسه کشیران یا دنبال بکنیم. واسطای انبارها و مراکز نگهداری کالا که مال تر غل و قدس هست و هستن اینا قرار شد بر اساس یک برنامه زبانبندی که اعلام بشه از طریق تیران هم انشاءالله بوجه چون بای م... سیف هم باید اساس نام شما صحبت کردن قرار شد سریع تر قضیه بوجه تحمیل بشه خرادات بشه انشاءالله اجرایی بکنیم از دو طرف هم گمروک هم خیلی سخکیره نکنیم حالا نمیدان که بل اصلا بله جو آیتم با مختلف چون 18 تا بند بله وسط تا این خیلی خوبه اختیار باقان... شد با استان جای دیگه این نیست <تصفح> دارن <باید> تهران <تصفح> بله بعد تهران شما با برنامه تهران بیاد بازی بکن کل کار بده این همه خوب شده واسه راهنم حمید قضيه تا زمان خط راهن ایجاد قرار شد اگر کالای باشیم واسریه زاهدان ان شاء الله اجراش داخلیم تو داشته اگر میخوام بگرم مستقر غضی خودرو مم. که یک که دیگه هست که برای کش و قشن تصفیم نشده اومده گمروخ فقط قبطه... نهلو نشده یک گمروخ بود یک دستگاه دیگه لذر داده بودن که قشن و قشن کیش... کشم و کیش فقط باشد نظر ما نخستم و... نهای عربنقی اونجا چیز گرد شبت کرده گفته اینا جزیره هم بیند و تا بیند اونجا جزیره اینطور مبارد و مترک کرد رو بیندن که من دارم من نامش فرستادم من نظریات دارم هم. اینجا نظریات دوستانم گرفتم ما به کی نوشتیم نامش رو؟ پیگیر هستیم انشالله به دریرخونه نوشتیم؟ خب به جریم باید بین نیست اینون روش هم هست. چون قضیه ثبت سالفارشم که که منتظر داشت صورت میگیره برابر قانون براس ماده 14 مناطق آزاد و 8 مناطق ویژه اقتصادی شو... تو شمول بحث مقاره صادرات واردات نمیشن شرایط ویژه که الان موجب اومده آخرین جلسه هم که برگزار شد تهران قرار شد که چهار اندیشه بشی رو برای ثبت سفارش ان شاءالله چه اتفاق میفته یا ورودی یا خروجیش یک اتفاق ما که دیگه اون وارد کنده با مشکل مواجه نشه دیگه ورود سرزمین اصلی میشه قدیم دیگه همون احتمال زیاد همین اتفاق میفته نگاه همین الان نشه که ما زیاد وارد قضیه اجازه نشیم دنبال میشه اینکه قضیه کای اکبرین مطرح کردن اتاق بازرگانی تشکیل اتاق بازرگانان و انجمن کاملا الاشرافیت داره که اصلا اتاق بازرگانی اگه اکبر هم اعلان خودش پیگیری بکنه اتفاق توی چاوهار میفته نیازی به استان هم نیست چون مستقل تعداد کارت بازرگانی میره 50 تا صد تا اگر باشن میتونن تشکیل اتاق بازرگانی بدن بیان یک راهگیری بکنه که انتخابات زمان سراسری اعلام میشه اتاق تشکیل بشه تو چاو هم همین اتفاق ممکنه بیفته الان تو استان خوزستان فکر کنم سه تا اتاق هست یک اهواز است یک خرمشهر یک آبادان اینجا هم اتفاق هم میوفت اگر پیگیری بکنم؟ این خودتون پیگیری بکنم. من پیگیری کرده. ما از اتاری من موقعی از کنارد کولم پیگیری بودم ولی نمیذارن دوستان کی نمیذاره؟ شما باید شناسایی بکنید تشکیل بده دیگه کار نمیذاره. توجر رو ما نمیتونه اجبار کنه؟ صادمون هستون. اونا لابی میکنن رایزنی میکن. اینجا لابی اگه قانون میگه با تا کارت شما اتاق تشکیل بدید. خب ما نمیتونیم 5 تا کارت جور کنیم که نمیتونیم نه اینو آیدو دکتر ببینید بعد بلاخره هیچ من منطقه آزاد اتاق مستقل خود داره ما خود سازمان خودمون متهمین باشه ما میگیم اگر چه بخواد تفاهمی بگیفت توی هم شورای مصوبه داشته باشه که حداقل سازمان ما هم قانونی بشه برنده شورای خان بزنید تو جایی که به صد داره کارت بازرگانی اثر خان بزنید بعد آنها را دعوت کنیدید به شکل بدید بعد تغازها بزنید به دیگه باشند دیگه هستند اگه می داشتن می دونم. میشه می کار شه. کارشون نده. من با ما تشناد رو. حالا البته شما های اکبری. بعدا توجی ما رو بکنید. چه منفعتی برای ما داره؟ نه. اگه برای ما منفعت رو قابل شد هم جوی داشته باشه؟ برای منفعت داره. برای ما منظور من توجار و فاماک من که صحبت می کنم از تر حالین اقتصادی منطقه صحبت. برای خودش که نمیگه برای توجار رو برای خانواده میگم. ما چون یه اتاق بازرگانی الان داریم شاید همینو تغییراتی بدیم توش همون بشه. شرایط واقعا گیر. شرایطش خیلی بد. ولی عجیب باشه مثلا میخوام بگم که نه ببینیم که چه مزایایی برای ما داره این کارو بکنم همینجوری چون اسمش اوتاقه که ما نمی‌دونیم. شرایط اوتاق بازرگانی منطقه آزاد حالا با... اونا تکالیفشون چیه؟ کشوری فرق میکنه. آنها شرایطشون کلی باهم فرق میکنه مجازات هر شرایط خاص خودشون دارن. خدمت ما تو خود چاوه ها هم یک گادبی قابل دید از اون میدان هفت صنفی تا بنده اصلا دوباره نیست ماشینی که میاد کول با مشکل بازی میشه یا تو طرف اسکله شهر کالونتری میاد نهایت فرندان اگر دستور بیانیه سریتر تره اینال مواردی است که زمین شعبروی بات بگیره راه داره میاد پشمان و مال نامداری اری استاندار. ا سخت انجام یکم در بندر کنار بندر مثلا پیر نیست مثلا این تجار خارجی کالا شون رو به جابجا میکنن کنن رانده ها می اونجا و امکانات هیچ چی در کنارشون نیست یا مثلا یه مسائل ارزی اینا مثلا تاجر میخواد بره کالک خارج میکنه به صورت ارزی کار باید انجام بده ایهو مثلا چه 50 تا رانده میرن بانک مرکزی بانک میلی کارشن راه اندازه میشیم در کالای الان از طریق بندر کراچی میره به کابل 23 رسول میکشه از طریق بندر چابه که برود تا مرز میده هفت رسول میکشه اگه اینو را تصحیل بکنیم سریتر کار میتونیم کانات فراهم فرم در کنار خود مثلا این. ده. راهاننده خارجی که میاد امکانه توی در کنارش باشه اصلاً, اصلا ممکن نیاز نباشی که داخل شهر بیاد هزار یک امراض این مشکلات اینا رو که تو بسای مسافرین توریست هست اینا رو باید رایف بشیم و هست که دوستان اینجا منتقل کردن به من اگر اینا رو باز ما تو خود چاوار انشالله دنبال بکنیم بنابراین بنده در خدمت عزیزان هستم یعنی اومدم اینجا هده که این طرح ما اومدیم احسااب کردیم چند ده تا مورد هست اومدیم که درخواست های رو بگیریم یک وسی بود تو سقط وستان قزئی توسه میبر شهر که همی عزیزانم هم شهرن توسه میبر شهر خراسان جنوبی خراسان کرمان سیستان و الان برید شما کرمان نگاه کنید چه وضعی داره خراسان جنوبی سیستان و هیچ زیرفتی ایجاد نشده با طور بلقوه تو استان هست ما الان اومدیم این کار رو دنبال میکنیم یک نفر پیدا شده که در سطح ملی هست دنبال میکنه ما از این فرصت و زرفیت باید استفاده بکنیم همش داریم اعلام میکنم امکانات هست این زرفیت ها هست اینا رو باید احساب کنیم مشکلات رفع رفت بکنیم که زمانی که کار عملیاتی بشه کشتی بیاد اینجا دمراج نفت مشکلاتی دیگه وجود نیاد که دیگه از این فرصتی که دست ما بردی، دیگه فرصت دستمون نمیاد. ما از این موقعیت باید استفاده بکنیم. ما الان به صورت جدی در سری غیرا پیر هستیم، یعنی هر روز مکاتباتی که صورت میگیره با تلفنی روی مدرس صحبت میکنیم. خودش میگه شما برید مراجعه بکنید، پیگیر باشید، زنگ بزنید. اصلا رایت نمیکنه که این کارشناس هست، مدیر هست، خودش مستقیم زنگ میزنه. خودش پیگیر هست. چون آقای مدرس و یک سری نی‌نین 20 سال پیش که ملایای گنجری آوردیم تو ست و استان قبل از اینکه انتصاب بشه سال گذشته من آوردم اینجا اصلا مسئولیت هم نداشت همراستونم هم کلاً بردیم بندر تو بندرم برد اونجا هم داشت امکانات اینجا رو دید بعد می گفت که این ظرفیتی که اینجا هست و فاال نمیشه من گریم گرفته من باید اینو استانو فعال بکنم بندر چابار که پیشانی توسعه استان هست ما باید اینو عملیاتیش بکنیم و فعالش میکنیم بنابراین دوستان هر گونه درخواستی دارید هر مورد خاصی است که بنده از طریق تهران پیگیری بکنم در خدمت عزیزان هستیم بیا ب یک همدلی و همبستگی و یک ید واحد باشیم کار دنبال بکنیم و منم منمان دیگه نباشه بخشی نباشه همه دست به دست هم بدیم گمر اداره بندر بازرگانی کل دستگاه یک همراهی همدلی داشته باشیم به یک نتیجه واحدی میرسیم انشاءالله سریتر این کارم اصفرد زده میشه و اتفاق نوع و خوب میفته مجدداً تشکر میکنم از اینکه حوصله حسله بخرج دارید و برازم گوش کرد انشاءالله که با یک جنباندی واحد و خوبی به یک نتیجه بزرگی برسیم تشکر میکنم از جناب واقع فرماندار و در درخدمات عزیزان هستیم. و برادر و هزر انمویده ها چ استفاده برای کافی بریم و السلام علیکم و الحمدلی و برکاتو سلام علیکم محبت الله الرحمن الرحیم و بهی نسته بعد هم کنم و اندو و عضرت عباد الله و یاران و فرزندان و اصحابش رو با امیدواریم که انشاءالله در این ماه، در این ایام و در این ساعات و لحظات اونچه که بهره معنویی که باید از خانه خان که گسترانیده شده، نهایت به اولادیم و دخیل قبر و قیامت قیامتمون باشه و همه حسینی باشه. خیلی مقدم ارزم کنم خدمت همه عزیزوان به بی بیجوی برادر عزیزمان جنبای حسنفور که با کولباری تجربه، توان و مدیریت و بانون یک چهره ناماشنای استان این مسئولیت رو پذیرفتن و ناحتم تشکر به حوزه شهرستان چاوه از برادر جناب دکتر کردی مدیر آمیر محترمی منطقه آزاد که این جلسه رو برگزار کرده ما در خدمت چونستیم سویمانه تشکر و تقدیر میخوردیم از حضور مدیران محترم چه مدیران اوستانی ورزرزیم دنوال دنجلی عزیزشه برشوار دماینده اداره و همینطور بیرکل محترم و گمبرو به ساید عزیزان رو از سایی ادارات و مجموعه های مختلف به حوضه شهرستان چابهار و بخش خصوصی هم تقدیر و تشکر میکنیم خوب خوشحالیم که امروز در یک جلسه ای حال هرچند عنوان شربان کارگروهه ولی یک جلسه تخصوصی کاری است و یک جلسه ای که انشالله منتج به نتایج خوبی بشود که انها را بتونیم هرام که هست بحرش برای حوزه شهرستان چابهار که نه بلکه برای کل کشور و استانمون و همینطور شهرستان چابهار خروجی این حتی شود تصمیمات و افتامات بشه مهمتر از همه تاب اون نگاه و نگریشی است که همه دوستان هم جناب آقای حسن پرهان جناب آقای دکتر و همه اعضای محترم وتنویو نگاه و نگریشی است که نظام مقدس جمهوری اسلامی و در رأس همه مقام معظم رهبری معظم الیادت متبرک شود دولت و مجموعه ارکان نظام نسبت به حوزه چابه چابهار چه در حوزه بندری چه در حوزه منطقه چه در حوزه کل شهرستان دارن و از همین قبل هم هست آنجایی که مقام معظم رهبری در حال توسه سواهل مکران رو گنج پنهان نام می‌برند. و از همین قبل هم هست اگر میگیم توسه سواهل مکران از جاز هست و بندر کواد باز هم چابه هار نقطه سقل اون هست و در اون دیده شده و از همین منظر به زیبایی دنبای دکتر کردی عنوان کردن هرام که دشمن به هر حال اون دشمن تینت دشمنی خودش رو اون روی خباست خودش رو به ما نشان داد اون تحریم های که بر ال هدف قرار داده مردم رو هدف قرار داده تمام بدنه جامعه رو در همه زمین ها اما باز هم اینجا چابهار مستثنا میشه از این موضوع و اون چراها و اون ها و اون مطالبی که دیگرانی دارن و حساسیتی که نسبت به شرایط چابهار تو اینا همه یک ظرفیت، یک فرصت هی, یک شرایطی هست که ما رو با تمام توان و ظرفیتمون از این فرصت و از این از شد روی کرده مثبت وجود داره استفاده کنیم خب جناب هم قطعا با تواجب مشکلاتی که در حوضه استان بوده در شهرستان های مختلف اون زمانی که مسئولیت داشته و از جمله در حوضه شهرستان چابوار و امروز هم عنوان سکاندار استان همه این مسئال رو بزیبایی میدانند و همان بمس کردند، در کردن چاله های سال با اونها کار کردند و خب در سطح هم استانی و هم ملی در حال پیگیری هستند این هم یه ضرپیتی و یک فرصتی است که ما باید نهایت استفاد اما اونچه که پیرامون هرچه و خدمت شما این جلسه و کارگروه مهمه خب همون است که شما دوستان روان کردید که آقای مدرس خطرا در مجموعه وزارتخانه مسئولیت رو پذیرفتند و نهایتا با این ارق و با این علاقه و با این اطلاعات مسائل رو پیگیری می خب خوبی که از دقدره های همیشگی این بود که اونچه که ما میگیر یاد رو همین میز در خدمت دادستان کل کشور بودیم در خدمت معاون رئیس جمهور بودیم در خدمت رئیس مجلس بودیم در خدمت خیلی از مسئولی دولتن فقط پیرامون همین بحث صف تو سفارش و کالای گروه 4 و مشکلاتی که در حوزه منطقه وجود داشت که چه دغدغه‌ای داشتن بخش خصوصی اون برادرمون امروز گفتن 200 تا در اون بوره سال گفتن بالای 500 تا به تعطیلی گرایید نایتون دارین میره به 1000 تا برس و ان هم یک سره تعییر بشه خب خیلی از مسائل رو همینجا میگفتیم دوستان هم یاد داشت می کردن مطالب را از خدمت شما که می گرفتن و جا می بردن منعکز ولی امروز های دکتر قردی عنوان کردند که با تشکیل جلسات مختلفی که در سطح کشور و با تشریف فرمایی مسئولین مختلفی در رده های مختلف هر قوه حالا چه قبه مقرننه قضایی و مجریه از گروه های مختلف آمده در نزدیک، دیدن، نشستن، تصمیحاتی گرفته شد، اینا منتقل شد و مرکز کشور و امروز هم نگاه و نگرش هر که ما میخواستیم نسبت بیرمدگو نگاه مثبتی است. خب از این نگاه مثبت ما باید نهایت برابردارین و حالا به قربای حسنپوره عنوان رابط، عنوان مشابهر، عنوان کسی که درداشناست، نهایتان هر خدمت شما که به این مسئولیت انتخاب شدن، باید نهایت استفاده رو بکنیم. برای نهایت استفاده کردن از این موضوع، یکیش اینه که ما باید جمعی بنگریم. همونطور که همه دوستان گفتن. منها رو بذاریم کنار. ما تو بحث شورای تامین همیشه اونجا مطرح میکنیم، میگه ما هر که هستیم، هر چه هستیم، هر عنوانی داریم. اینجا ما این. منیا رو بذاریم. بله، بخشیدین تصمیمات کلی وقتی گرفته میشه. شاید به من نوعی به دستگاه من هم یک سری مشکلات ایجاد بکنه. ولی به لحاظی که مشکل کلی رو حل میکنه ما باید هرچهان خدمت شما که مقداری کنار بیم، مسالی میزنیم، جنابایی مظلومی از اینجا عربان کردن در یه برههی بود، موضوعی که در شهرستان قابل حل بود، همین ترافیکی که جنای بندر هرچهان شهید کلاتلی بوجود وجود می آمد این تا کامیون و تریلی تو این مجبوع تو صف بودن، از او برم جایگاه سوختی هم همینطور معبر ورودی شهر هم هست، کمروزی هم از اون قسمت هست، سر و مشکلات آنچنانی. اون دوستمون که در گذشته اینجا بود چون نمیخواستیم مشکل رو حل کنه در روز پایانی هم ابرازشو شد و خدا نگهدارش باشه چون همیشه دنبال چالش بود یه مشکل جزئی واقعا دیگه برای این آاد ما نگرانی می داشتیم یکی از نگرانی ها و دغدغه های ما همین موضوع شده بود چه بکنیم این مشکل تراپیک اینجا رو حل کن یه مشکل تودیشی ابروود علامه کنه کاقا ما 24 ساعت آماده اییم که خدمترسانی کنیم و در همون گروهایی که برون بحث ثبت سفارش اون و نگارانی هایی که وجود داشت درست ایشورا می مکاتباتی رو انجام میداد اما ما هم با دردقه داشتیم که مصوبه شورای تامین اوستان ال شورای خدمت باشو پیرامون مطلب افغانستان به مجموعه تهران اونجا هم موذگیری کرده گفت چرا شورای تامین اوستان اومده دخالت کرده در این موردی در حالی که ده افتخانیتی نبود مثلا کلی از مشکلات اینجوری در این پروژه زبانی لازم حل بشه خب امروز از شما خدمت شما شور این شورا وجود داره وقت اولویت کنیم مطالب دو تا اول ما باشیم دو تا اولویت بندی کنیم کدوم یکی از اینا اولویت ماست این مطالبی که دالای دکترا اول بالاتر بله همه اولویته اون مطالبی همجوری هستن پول گفت نگاه نگاش از اون سمت هست اینا هم همه مهمه کدوم یکی از اینها اولویت ماست بر اساس اون اولویت ها حرکت میکنیم الان ما در میگیم این کار این کار گروه نتیجه این کار گروه نتیجه این جلسه تا موضوع مشخص و معین یکم بحثی کشیهایی که براتون توی مجمع میگم آقا 16 تا تو پشت توی مجمع اومدن بورس اوراق خدمات شمولجا کارت احلیانه شده داشت در دو شما باید بودید که بالا از بین خواهد رفت 1 میلیارد تومان از یله بحثاراتی است که متوجهون هم جامعه از بخش خصوصی تو همین سرزمینه در واقع تو همین سرزمین تو همین کشور تو همین آبادی اجنبی که نیست از خدا بالله همین مال ما این که باز راهشو باز کنیم خود خب اگر بخش از اون مسائل رو گمرک هم تو که باید در واقع همراه همگام ما با تاثیر کنه پیشنهاد بدید از اونجا اونجا مشکل حل کنیم که دست ایشون باز بشه نقطه‌ای دوونه که اختیاراتی که هرچوری من با سال گفته می‌کشم باشه و با باری نمی‌تونه اختیاراتی که دکتر کرد هم گفته اختیاراتی که باید به حوزه این کار گروه داده بشه غتن اختیارات مشخصی باشه بخش ادورا رو ما بتونیم در حوزه شهرستان حل کنیم یعنی همینجا با دونان همتون دیگه دیاد نه باشه به پیشنهاد مثل عذر دادم شورای تامین شهرستان یا تصمیماتی می‌گیره تا یه حد اختیاراتی داره شورای تامین استان یه اختیاراتی داره بعد میره شاک و نهایت شورای عالی هم میتونه اینجوریه بعد به همین گونه باشه را تنیر اختیارات خاص رو باید به این کارگروه این شورای که در اینجا هست که ما این اینها خود رو خودمون بتونیم رتق و پط بکنیم همون اختیار اختیارمند داشته باشه همون اختیار رو به زیبایی گفتن دوستان گمرک داشته باشه همون اختیار رو در خدمت شما یستن پور داشته باشه همون اختیار رو دوستانمون در قله و مجموعه دیگری منطقه بندر همه داشته باشه که اینا رو همونجا رتق و رجوع بکنیم شرایط چابهار چون شرایط خاصی است قطعا باید به صورت خاص همونجا دیده بشه نکته دیگری که وجود داره بالاخره این کارگروه با جلسات رو حالا مشخص بکنی ماهیانه برگزار میشه، دو ماه برگزار میشه، سه ماه برگزار میشه. با چه روی کردی؟ با چه روی کردی؟ اونجا گفتم بندی با چه روی کردی؟ یعنی بیایم هر کدوم از اینا رو مثلا برای جلسه ماه آینده میخواد برگزار بشه یا دو ماه آینده، ما در دیروز نباشه که دعوتنامه رو زدن، کاغذ فرداش رو در گونن معطوف رو بگیرید. خب با هر عرشبت... کمترین اطلاعات. اگه راه دکتر کردی تو ذهن این مدیران رو خیلی از دوستان نمی دونن جلسه چی؟ و این باید از قبل غیر از خدمت شما کارسازی بشه، بشه، اطلاعاتی بشه و با دستور عمل خاص خودش هم اونجا عنوان بشه که با اطلاعات کامل بیایم اینجا و نهایتا سوال بکنیم و پاسخ بدیم. اگر بنده در حوزه اختیارات و هم هست، هم با این سوال رو مطرح بکنم و باید پاسخ خودم پیرامون موضوع، اگر طرف کار اقناعی رو برش انجام دادیم خب وا میشه، اگر من بود پیگیری بشه که نهایتن رو بکنیم در مرجعی دیگری تسلیم خب یه بخشی از این موضوعات موزه موضوع شهرستان، یه بخشیشم مربوطه به حوزه استانه، قطعا استان میتونه اینا رو حل بکنه. و با استان باید تصمیم گیرنده باشه. قطعا این اختیار رو در حوزه استانی، خب شخص جناب استاندار حتماً مدیریت کردن و مدیریت خواهند کرد. اما یه بخشیه رو باید اونجا حل بکنیم. اون‌هایی که لاینحل هست. بولایک لاینحل است ما میتونیم نه استان میتواند قتن رو به مرکز مرکز مونکس بکنیم که مرکز تصمیم بگیره نه یایم یا حمله رو ارجاع اصحاءی میکنه حمله اینجا اون موجودی مر... که مربوط به فرماندهی میشه باید ما ارجاع بدیم اونجا اونجا مربوطه به منطقه میشه یا به گمرک میشه وجبوری که میتونیم از اینجا حل بکنون نه اونایی که لاینحل هست ما ناتوان هستیم استان هم ناتوانه اونوار ارجاع بدیم به مرکز و نهایتاً مرکز تصمیم لازم خودش رو بگیره جناب دکتر عمران گفتن که بازار در هفته آینده مجموعه دوستانی میاد در همین مجموعه به تسلیمات لازم جو گر... خواهم گیرم خیلی عالیه به اگر جلسات تهران هم لازم هست، به عنوان نمایندگی‌ها هم ایشون هم در استاندار نمایندگی از این مجموعه کارگروه در جلسات تهران هم باشه اونجا مطالبشون مطرح بکنن این کار هم شکل بگیره میتونه یک از پیشنهاداتی باشه که از باشه. خدمت شما کلا رو ما اجرایی و عملیاتی کنیم یه نکته مهم دیگریم دیگر دی که هست جناب دکترمون کردن ما به غریب مثل این بحثی میگیمه نه وانطقه ی اردو در مسالمت را گذازم. خب انقدر غریب بناس ان شاء تا مهر ما حداقل کمکی که های دکتر بردی واقعا جای تقدیر و تشکر من در خطبه نماز جمعه گفتم. ابا یم نداریم از این کاری که تلاش خوشش بدی کنه. گفتم بگو تشکر هم کردید. هم پیرامون بحث بیمارستان هم پیرامون بحث مدارسی که کمک کردان رو به اعتباراتی که امسال گذاشتن واقعا برای مدرسه سادی ما مشکلات و موذرات خاص خودمون دارن تو بحث اومده. خب این کمک نمیگه همه مشکلات حل هم میشه. درگی منطقه آزاد و صائمم گرام همه اون پیوست اجتماعیش و اون شوراتشو انجام داد. ولی در زمانشون اتفاقات خیلی خوبی انسافار افتاد. اگر در گذشته همین رویه ادامه پیدا می‌کرد امروز ما این مشاوراتو نداشتیم. طبیعتا نداشتیم. نه تنها در چابهار نداشتیم، بلکه کل نوبستان هم نداشتیم. ولی حرکت مبارک جای تقدیر، جای تشکر اینجا هم باید نکته خوبی اشاره کردن برای چابهار هم از این تصمیمات در سطح ملی ما داریم می‌گیری. برای چابهار چه باید بکنیم؟ مردم چابهار شهرستان چابهار چه منفعتی از این تصمیمات ما خواهند داشت چون کسانی که در حوضه منطقه هستند، چون کسانی که در حوضه شهرستان هستند، مثل پروژه آب الان امروز مطرح شما دارید می‌بینید میگه ما قرار انتقال آب به حوضه استان. سوالی که در بین جامعه مطرح میگم به چابهار چه خاطرت؟ حوضه چابهار از این آب استفاده میکنه. استان هم جناب استفاده میکنه یا نه فقط میخوام ببرن به استان دیگری. ای؟ خوب این سواله که قطعاً چابهار به استان جز اولویت اوله از این تصمیماتم به زیبایی دوستان گفتن حتما باید برای حوزه چابهار هم با شهردار عنوانه منطقه چابهار شهردار چابهار با نهایت ارشادت خدمت شما اون مسائلی که مطرحه باید نهایت بهره برداری و استفاده بشه و سپس در جاهای دیگری که اون انامین و شهرداری دیده میشه حتما انجام میگیره. یه پیشنهادی دیگر من دارم اگر بتونیم این رو عملیاتی بکنیم همین کارگروهی که در اینجا ان شاءالله بنا صورت مستمر هم قانونگذاری بکنه هم تصمیم سازی بکنه هم تصمیم گیری بکنه همین همینا رو الکاسه بده به marked قطعا در مناطق دیگری هم کارشو خدمت شما هر شبیه ماجریم کارهایی رو انجام بده این بازدیه جناب آقای دکتر کردی که واقفه بالاخره همه موضوعات کل کشور و پیرامون و مناطق آزاد و مجموعه ها میدونه همین کار قانونام چی ردی داره در مناطق آزاد دیگر هم برای یه رو داشته باشان یا مطالبی رو داشته باشان یا مواردی رو داشته باشان که بتونه کمک بکنه اون بخشی که خود دوستان هم گفتند اون انتخابات گوملوکی در این جا میشن سی تا کمترینش هم در حوزه شهرستان چاوبار. اونیم که چاوباری که میگیم افق آینده‌اش است این که کشور که هیچی منطقه رو میتونه متحول بکنه. خب چرا اینجا نباشه به اون شرایط لازم خودش نرسه؟ اینم یه حقی است قطعاً برای این مجموعه وجود داره و در نهایت ما می‌خوام این عرض بکنیم ما هم آمادگی کامل و تام و تمام خودمون رو داریم که در حوزه شهرستان هرامش که تصمیماتی با گرفته بشه ما بلود کنیم با کمک کنیم و زیپه خودمان میدانیم و زیپه خود ما می دانیم. و زیپه میدانیم می اصلا بحث منطقه با بنده و شهرستان و چاابار نیست. همه ما این عرض کردیم همه ما این به همه حات هم کمک کنیم از این فرصت تاریخی از این فرصت بین نذیر از این پرصت بیبدیل نهایتباده رو و نهایت اعتبار رو خربتیم و برمته و برباشه به آمواظب رهبری جاهادی و انقلابی بادمما کنیم ولال جنگ اقتصادی است جنگ اقتصادی تمام عیار ما هم در نقش فیکان مبارزه با این جنگ اقتصادی یعنی چابهاری کرد شد. شما همه دوستان اظهار کردید که امروز میز چابهار در تمام کشور در تمام ها در تمام ارکان دولت در تمام ارکان نظام با الگوهای دکتر عبدالمن که در, در مجموعه تشخیص مصلحت نظام هم همیشه خدمت اونجا این بعد مطرح با با اساسیات خاص خودش داره دنبال میشه و اون جمله پایدارنی چابهار برای جمهوری اسلامی مهمه برای پیشرفت تو برای دشمن هم مهمه برای پسرب این دیگه آمران ترین جمله ای رو مطلب است میگه حالا این ماهیم که ای چگونه باید این پیشرفت رو حاصل بکنیم دشمن رو مایوس کنیم همجوری اونیک در همین سرها و در همه سنگرها دشمن مایوس شده ان شاء که اینجا هم با با اون اراده جمعیک که وجود داره با اون توانی که وجود داره همه عزیزان دست به دست هم بدیم و همه قطعا در داشنا هستیم همه هم میخویم کاری رو انجام بدیم اما با نگاه آم با نگاه اینی که شهرستان چهابهار، استانمون و کشورمون نه با نگاه برمونداری و بخشداری و گمرک و اینها تشکر میکنم از جناب دکتر کردی هم تنمیمانه سپاس بودارم و همه عزیزان و برکت صلاباتی و محمد آدمان اللهم صلاباتی محمد و حالا با تا کارون میکنن به کار کارون ندوده بار مشکلات رو شما ان شاء که حضور هم حضور باشه ان شاء در گذشته از اینا مالیت ما خیلی بود خیلی کنم باش خب بخالی پاس چند؟ ما آمدس خب خب و شروع توسعه چه ها امروز اولین جلسهش برگزار شد بیشتر دوست داریم ببینیم این شوراه چه پیگیری هایی رو در بسیار کار داره برای توسعه هرچی بیشتر چاقهار مردم اسمال رحمان بخیم آتواجی با سیاست, ها... سیاست های اقتصاد مقامتی و تحکیدات مقام معظم رهبری و همچنین عظم دولت برای توسعه بندر چابهار، بعد از بازی دقام مقام وزیر باداری در امور بازرگانی که از بندر چابهار و اسکله شهید بیشتی و امکانات وزیر ساخت هایی که داشت استعداد دارید که الان وضعیت چابهار وضعیت خیلی خوب و به هست ظرفیت خوب ایدیا شده هم از این که امکان پهلوگیری کشی با ظرفیت بیش از هزار پرون و همچنین بحث تخلیه و بارگیری به صورت خوب و ایدالی فراهم شده بنابراین وضعیت خیلی خوب و مطلوبی داره آیه مدرس دستور دادن که کلیه معابنت های وزارت خونه که در عوضه وضع تهمین کاله های اساسی و همچنین صادرات مواد مدینستن همکاری نزدیکی داشت باشند ابلاغ شد به شرکت بادنی دولت ایران و پشتیوانی امور که بیش از پنجه ها از کاله های که تا پایین سال وارد کشور میشه از بندر چابهار هار صورت که مورن موافقت قرار گرفته دنبال میشه لبسی معاملت امور صناعی و ایدرو اعلام شد که قطعات و لوازم یدکی که وارن میشه از طریق بندر شاباهار قسم به کارکنه خدرساده خراسان بیرسه رو بندر شاباهار صورت میگریم همچنین صادرات مواد مدنی از طریق ایم و باید که کامینهایی که اینجا هم می دو سربار داشت باشند مشکلشون مرتفع و رفت بشه هدف از تشکیل این شورا با اهداف خاصی است، بالا بالابردن توان تجاری کشور است، رایت کردن اصول پدافند غیر عامل در تجارت دریایی و همچنین جلوگیری از دپول کالا و کاستن ترافیک در بندر امام خمینی، همچنین کاهش هزینه واردات و پیوند و همبستگی بین کشورهای همسایی هستی از طریق بندر چابهار صورت بگیره مشکلاتی هم هست اینا رو بادرفش بیشتر روی قضایه بحث شد یک بحث سی درصد تخفیف سود بازرگانی پیشنهاد وزارت خونه هست با تابجیون که در بنادر دیگه این تقویفات در حد بیسون درصد هست ولی در بندر چابهار در درصد هست که اصلا مشوقی نیست برای وارد کننده کالا بنادر دیگه که کالا رو وارد میکنن جدایی از این که اون تخفیفات سود بازرگانی دارن توجه به جایی که در مدید مناطق آزادستن از مالیات هم 15 درصدش معافه هستن در, در حال که چابه این معافیت رو نداره پیگیر همین هستن که این کار رو انشالله انجام بده رو بس فراورده های دوامی خصوصن کشارگاه ها و زیرساخت هایی که در روسان ایجاد شده مقرر شد که حدود 5 5000 تن گوش سال شده روسان سی سا می رسسان با هایی که با شرکت کوشی مورد دام شرکت بالاداری دولت ایران و سال دستوی خصوصی ایجاد شده اثری غستان ان به سطح کشور توضیح بشود ما وارد دیگه ح قضیه خط کشیرانی هست که تو چابهار، قبولش وجود نیومده با هماهنگی با شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار شد ساز و فراهم بکنه خط کشیرانی تو بندر چابهار ایجاد بشه با تخفیفات ویژه خود بندر اداره بنادر کشیرانی بنادر در انلاوردی چابهار هم تخفیفات ویژه فراهم کرده اگر این مصورفا در کنار هم صورت بگیره واقعا میتونیم با توسعه بندر چابهار حرف برا گفتن داشته باشیم بگذارید انبار‌های استراتژیک هست که اینم قرار شده حساب در سطح استان ما انبار‌های زیادی داریم که از قبل به وجود اومده هم در چابهار هم هم در زاهدان و در سطح استان انبار‌های ویژه خاصی داریم اینا قرار شده که گمرک پیگیری بکنه ذیل کل گمرک قرار بگیره که بتونن تو انبارها هم کالاهایی که بیاد ان شاءالله و انبار به که در سطح کشور توزیب بشه چون از ظرفیت منطقه آزاد چابهار بخصوص ظرفیت توزیع مواد غذایی بحث برنج فراوری های برنج چه استفاده می بله بله یکی از مذیت ها و ظرفیت خوبی که در منطقه چاوها ایجاد شده منطقه آزاد چاوها و واسه فراوری و بسپندی برنج هست. بازی که داشتن جناب آقای دکتر مدرس واقعا این امکانات خیلی خوب و برجسته در این حوزه ایجاد شده ما جلساتی در تهران داشتیم با بانک مرکزی همراهی و همکاری صورت گرفت که به جایی که بریند به صورت آماده از طریق کشوران همسایی بیاد بیاد به صورت فلده اینجا و سبندی بشه، فراوری بشه و بر اساس نیاز کشور، درسته کشور انشاءالله توضیح بشه ساز و کارش در تهران انشاءالله داره فراهم میشه که بتونین کار رو بکنیم. بکنی تشکر بکنی که نداشت ممنون انشاءالله بیشتر دوزارش کار نکنی باید سوالی تحلیل چیز نماد بکنید بله من یه گزارش دارم می‌نویسم چون چه می‌خواد تو من یه گزارش رو می‌نویسم چون مطمئناً بابت این موضوع, موضوع مو های با این مقام خانم شد یه سری مصاحبات تخصصی رو من تا می‌کنم که حتماً باشون گرفته بشه دیگه از طریق شما این موضوع رو پیگیری می‌کنم من می‌خوام شما تماس بفرمایید واسطه شما اینجا.